فصل نهم. ایسا سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت پسرم دل قویدار گناهانت آمرزیده شد. فورا بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند این مرد سخنان کفرآمیز میگوید عیسی با افکار آنان پیبرده گفت چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد سپس با آن مفلوج گفت، برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو. آن مرد برخاست و به خانه خود را. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمیدن. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. ایسا به او گفت، به دنبال من بیا. متا برخواسته به دنبال او رفت. هنگامی که ایسا در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستن. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می عیسی سخن آنان را شنیده گفت بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تن درستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید. من رحمت میخواهم نه قربانی زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم، بلکه گناهکاران را. شاگردان یهیه نزد عیسی آمده پرسیدند. چرا ما و فریسیان روزه میگیریم ولی شاگردان تو روزه نمیگیرند؟ عیسی در جواب گفت: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی میآید که داماد از ایشان گرفته می شود. در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچکس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی کنند. زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزن. اگر بریزند، مشک ها پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و مشکها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می تا هم شراب و هم مشک سالم بماند. عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت دختر من همین الان مرد ولی میدانم اگر تو بیایی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند در این وقت زنی که مدت دوازده سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد. زیرا پیش خود می گفت اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود دخترم دل قوی دار ایمان تو تو را شفا داده است. و از همان لحظه او یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نوح سرایان و مردم وحشت زده را دید فرمود همه بیرون بروید این دختر نمرده بلکه خواب است اما آنها فقط به او میخندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست خبر این واقعه در تمام آن نواهی انتشار یافت در حالی که عیسی از آنجا میگذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند: ای پسر داوود، به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: «بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: بر طبق ایمان شما برای تان انجام بشود و چشمان آنها باز شد عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند اما همین که از خانه بیرون رفتن در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند در حالی که آن دو نفر بیرون می‌رفتند شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود زیرا دیو داشت عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است اما فریسیان گفتند او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند ایسا در تمام شهرها و دهات میگشت و در کنیسه ها تعلیم میداد و مجده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا میداد وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آنها سوخت زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر چند بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.